خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به این از تعین با ذکر ادامه بحث رو انشاءالله دخمت هستیم اللهم صلی اللهم حمد و آل محمد المرحلت و, و في تعمیم امزاع سیرت الخاصته امومیت بخشیدن امضای سیره خاصه از از تقرد في فی عرف خاصه وستتعنا اثبات امزایها به احد الوجوه المتقدمته فل متعقن و من زالکه امزاوها به نسبت الى اهل زالکه الارفه و اما به نسبت الى هم فلا یسبت و امزاو سیره خب بحث ما در مورد مقدار اون چیزی که با سیره ثابت میشه وقتی یه سیره امضا شد توسط شاره چه مقدار حجم برای ما ثابت میشه این رو میخواستیم بررسی کنیم گفتیم در دو مرحله است مرحله اول این بود که ما دنبال بحث بودیم آیا سیره برای ما ارتکاز رو هم ثابت میکنه و این بحث هایی که گذشت؟ اما بعد در مرحله ثانیه میخواییم ببینیم اگر سیره خاصه بود اگر سیره خاصه داشتیم آیا در حد به سایر افراد هم اثبات میشود یا نه مثلا شما ببینید در یک منطقه سیره ای داریم بین خودشون برای کاری بعد با اون عدل هم ثابت شد که این, حج... این سیره برای آنها حجت است. خب حالا ما که تو اون منطقه نیستیم برای ما هم اثبات میشه مثلا در یه منطقه یه کاری انجام میدن جوازش با سیره برای آنها ثابت شد ما تو منطقه نیستیم برای ما هم جایز میشه یا نه پس پس مهمیه فرش کنید توی حجاز در مدینه مثلا یه کاری انجام میدادن سیره بوده، شاره همون رو اثبات امزاش رو داریم میدونیم که امضا کرده حالا ما که توی حجاز نیستیم، توی مدینه نیستیم ما توی ایرانیم، تو فارسیم، توی فراسانیم، تو آذربایجانیم یا اراقیم، اندلوسیم آیا برای ما هم اون ثابت میشه؟ خب در این مورد نظر میتونید بگید یه ذر روش کنید خب و قاعده اون بشه میشه چون سیره خاصه است دیگه ببینید قاعده نباید تأمین بشه چون میگم آقا این سیره مال اهل همو است دیگه امام علیه السلام سیره اهل مدینه بر این کار رو امضا کرده دیگه این برای خوراسانی ها اثبت نمیشه که درسته ولی پای عوامل دیگر رو هم وسط بکشید یعنی ممکنه یک کاری برای اهل مدینه جایز باشه برای ما جایز نباشیم میشه مثلا در ظرف تلایی چه، ظرف طلای سفید مثلا، مثلا تو اون آب میخوره، مثال فرسی حضرت هیچی نگفت، ثابت شد برای اونا جایزه، یعنی برای جایزه، برای ماها جایز نیست تمیم نمیشه داد آیم مسلم، امروز دیگه چوید دیگه، دو نفرید دیگه، طبعاً باید نصف بس با شما باشید، نصفش باید خلص الان شما ببینید مدیر نسبت به اون کلاس پایی مثلا هفتم که اون ورحه هست به اونها اجازه میده که سوت کش کنن به جای کلاس اومدن خب برای اونها رو امضا کرد اونا سوت کش میکنن مدیرم هیچی نگفت برای اونا بود هیچی نگفتی برای شما هم جوازش اثبات میشه یا نه اینو میخواد ببینیم سیره خاصه امضا شد برای یک گروهی آیا برای دیگران هم ثابت میشه یا نه به نظر میرسه که در نظر اول همونطور که ارز کردن اثبات سیره برای اون هاست برای ما ثابت نشه درسته؟ برای اون ثابت رو برای ما رو نگفت مدیر ما را ندید هستن شاید اما نکته دوم اشتراک احکام بین مجالفینه نه عالم جاهل نه یه وسیستگی است این به واسه عالم جاهل اشتراک احکام برای همه همین مکلفین هم دیگه هم ما هم شما هم اونها نمیشه گفت بر اونها جایز بر ما جایزه است بر اونها واجبه بر ما واجب نیست بر اونها حرام بر ما حرام نیست این رو نمیشه گفت لذا از این راه اشتراک اینا میشه به نظر به تعمیم رسید بعضی وقتا هم هست ممکنه ما بگیم که نه آجان خصوصیتی نداره پایه حرف خصوصیتی نداره اگر برای اونها حکمی جایز است، پس ببین از را اشتراک نمیگم. ما خصوصیتی در اون خاص در اون عرف خاص نیست حالا چه خصوصیتی نیست اگر برای اونها جایزه برای ما هم جایز میشه یه وقت از خصوصیتی دارن میگیم چون اونها این شکلی مثلا چون اونها تازه واردن خدا گفته که عب بگیریم. مسامحه کنیم ولی ما چه تازه وارد نیستیم پس برای اونا هست برای ما نیست این رو بگید آره ولی اگر خصوصیتی نیست لذا مشکل ایجاد نمیشه تامین میدیم دیگه پس مرحله ثانیه رو بذاریت من بینیم تمیمتون از مرحله تا ثانیه تمیمه ها به فراتر از سیره خاصه اونف خاص سیره ای رو داشته شده ما میگیم اول از راه اشتراک افتان یا بذاری رفت اون خود قاعده شو بگذارم مرحله باشه تبقه قاعده چون؟ عرف یا سیده یک عرف خاص امزا شده پس برای دیگران نباید هجت باشد این علاقه اما برای دو قدم دوم اشتلاح که تعمیم این دارن مال خودشون اگر ندارن پس مال همه دیگه این به نظر می نسه ولی یک راه دیگر هم برای حل این مسئله ما داریم اونم اینه که دونه دونه عدله حجیت سیره رو بیاریم بگیم که طبق هر دلیلی آیا میشه تعمیم داد یا نه این دقت دقیق چون یک صفحه همین رو بحث کنم کرد عدل حجیت سیره رو بیار مثلا امر به معروفه نحی از کرد نقض غرص بود ارشاد جاهل بود چی چی بود بگو این سیره ای عرف خاص حجت است چرا حجت است میگو چون نقض غرص پیش میاد یا نحی ازمان از جال آیم دست چی هست قایده لازره هست رو این حرفا بعد ببینید اون دلیل آیا زورش انقدر هست که بقیه عرف ها هم براشون ثابت بشه یا فقط تو همون عرف خاص ثابت میشه حالا ببینید المرحلت و ثانیت و فی تعمیم امزای سیرت الخاصته از از تدرد سیرت فی عرف خاصه سیره در این عرف خاصی استقراری و وستطعنا اثبات امزاه ها به احد وجود المتقدمته. به توانیم اثبات کنیم امضا اون سیره را با یکی از وجوه متقدمه. مثلا همون که از با قاعده نفی زرر یا با ظهور حال شاره. امثال اون موارد که داشتیم دیگه امضا اثبات شد. فعل متعدی قنو بن زالکر امضا به نسبت اله اهل زالکل عرف اول میره روی متعدد میگه اونی که یغینی میشه قاسم پور اینو چه عرف برای همینا امضا شده نه دیگران چون عرف خاصه اگر امام علی السلام تشی بردن عراق تشی بردن بصرہ دیدن تو بسره مردم مثلا خرید و فروششون رو اینجوری انجام میدن. هیچی هم نگفت خرید و فروش اون احالی برای خودشون تجویز میشه. حجب شاره امضا میشه. اما برای دیگران ندید. پس قدر متوقعا اینه. برای دیگران نمیدونیم چون دیگران رو هنوز ندیدن چون. و اما به نسبت الاغیره هم فلا یسبت و امضا و سیرته. فَإِنَّ الزهور الحالية دقت کنید عبارت رو زهور حالی یعنی رفع الان روی یکی از اون موارد برای ما امضا سیره رو آره یکیش زهور حالی بود دیگه چها هفتش تا دیگه داشتیم که امضا ها بنسبت الىزر اما الى غیرهم ام فلا يسب تو امضا لا ينعقد الا به نسبت اليهم ببینید اگر ما با ظهور حال شاره امثال رو اثبات کردیم الان ظهور حال شاره نسبت به فقط همین مردمه یا کلا همه مردم فقط دیگه رضا تعمیم نمیشه چما ان دلیل لا zarar حالا میره رو لا zarar لا به نسبت بالنسبه الا غیرهم لا zarar این بود که هرچی رو عرف به اصلاق زرن میدونه شاره هم همون رو قبول داره پس عرف رو قبول داره پس سیده رو قبول داره خب عرف رو قبول داره پس سیده رو قبول داره این حرفا کدوم عرف رو همین عرف دیگه عرف دیگر رو که نه لذا قدر متقلی رو همین میده فقط همین سیده و تعمیم نداریم لا یجیبه نسبت اله غیره هم لأنم موضوعه و هو الحق العرفی سابتون به نسبت اله ظال کل عرف دون نغیره مثلا توی این عرف حتا تالیف قائلن توی اون عرف قائل نیستن پس اینجا الان برای اینها این ضرر این حساب میشه این امضا کرد دیگه. اما اون یکی عرف رو هنوز نه نه که و جزالک دلیل رو نقل قر است این چندم شد چند تا درس وامیش دیگه اولش ظهور حالی بعد دلیل لازر کاش اینو کلی توضیح میداد داد می راه حل این مسئله اینه ما دونه دونه موارد دلیل رو بیاریم ببینیم آیا می تونه تعمیم بده یا نه اینجوری می آورد دیگه چزاله چه دلیل رو نغز القرز هی سکانه دلیل رو بین خب اینجا یه این نکتهی میگه اینو توجه کنید تا ادامه عبارت براتون حل بشه میگه که این دلیل مثلا نقض قرس دلیل نهی از بانچه اینا ارشاد جاهل اینها دلیل لبی هن. دلیل لبی خاصیتش اینه چون لفظ ندارد قابل اطلاع گیری به اصالت الاموم اصالت الاطلاح و اینها نداره که لسان ندارن زبان ندارن مثلا دلیل عقل خود همین سیره هستن خود همین دلیل سیره هم لسان نداره چون و هر دلیل دیگری چه لسان نداره. مثل مثلا اجماع لسان نداره اینها وقتی شک کردیم نمیتونیم بگیم آها داره دیگه پس عکس به دیگه پس اصالت رو بود. نه چیش چیش عامه عام نداریم چون لفظ عام داریم لفظ مطلق داریم نداریم که مثلا اگر اجماع داریم بر یه, یه کاری اندرش شک نمیتونیم اطلاق گیری کنیم چون لفظی نیست که اطلاق داشته باشه پس یه نکته کلی این که دلیل دو جور داریم یا لفظیست یا لبی اگر دلیل لفظی باشه اطلاقی عمومی چیز داشته باشه اصالت اطلاق و اصالت عموم اونجا چا داره ولی در دلیل لبی نمیشه به اطلاق یا عموم در دلیل عکس کرد چون اصلا نیست در نتیجه این به دست میاد که در دلیل لبی هر مقدارش یقین داری اونو عکس کن که دلیل بر اون دال هر مقداری که شک داری رو بندازش دور دیگه به درد نمیخوره برخلاف دلیل لفظی هر مقداری که یقین داری عکس میکنی تو دلیل لفظی مقدار مقدار مشکوک رو هم با اصالت العموم و اصالت الاطلا حلش می کنه. خب پس در دلیل لوبی ما قدر متعقن گیری می بقیه رو میذاریم چنار خب تو بحث ما هم اگر این دانه های چران براتون میشماری اینها قدر متعقن داشته باشه و داخل لوبی هم باشه و <تبه> همون مقدار قدر متعقن میکنیم قدر متعقن چی بود؟ همون سیره خاص خودش فقط، عرف خاص. دیگه برای دیگران شک کنیم میذاریم چنار نتیجه نمیشه. حالا اینو ببینید. و کزانه که دلیل و نغز قرز هی سکانه دلیلن لبیان یقتصر و فیه علم و و ها به نسبت الى اهل زالک الارفه و ها کزاسای رو الادلت لبیت مثل وجوب یا مثل لو میشه مثل وجوب الامر بالمعروفه و نه یعنه دلیل نهی از منکر برای ما می میگفت که اگر شار سکوت کنه در حالی که منکر خب با عدله نهی از منکر مخالفت کرده پس اعتراض کرد عدله نهی از چیه لفظی الوبیه عدله نهی از منکرام لفظی الوبیه نظرتونو بگید عدله نهی منکر لفظی الوبیه نهی از منکر نفسی یا اگه بده لفظیه که همه این تشکیلات خراب میشه منکر کردن و نحیز... نه نه نه نه نه از نه کردن نه چه قولی و فعلی داریم اون نه عدله که نهی از منکر رو برما و برشاره واجب کرد میگه آقا برشاره واجب است نهی از منکر کند و امور برهور شو میدونم من هنه منکر اینا هر دلده لبی هن دیگه درسته؟ لبی یا لفظی البته همین الان من کردم لفظش رو گفتم به و هر منچه هم دیگه تو مقالد مشکوک اقصب اطلاقش میکنیم به عمومیتش میکنیم پس چطور این گفته این لوبیه. بخونم دوباره ببینیم اشتباه چیزی توش هست یا نیست میهه که و ها کزا سا ارول عدلت لبیت مثل و وجوب الامر بالمعروفه و نهیانه منکر که یه دایل لفظی براش داریم وجوب دفع منکر از اجیال آینده حالا شاید بشه گفت این عقلیه مثلا لبی باشه وجوب ارشاد جاهل این هم اگر روایت آیه چیزی باشه این که میشه لفظیه این چطوری جوری شده؟ جواب بزن تو میان؟ حالا اصل کتاب که مطلبش روشنه میگه اینها دلیل لبی هن. ما در مورد مستاقش اون مقدار چه قدر متعقل داریم چه سیری خاصه است عکس می کنیم سایر عرف ها رو شک داریم میزنیم کنار الان این سوال ایجاد شد که اینا در حالی لبی نیستن اینا در حالی لفظیت اینو خودش جواب میده میگه که فهی نه عدلت و... معلوم شد پیش بطوره نکدید شد عدلت وجوب زالکه و انکانت عدلتن لفظیتن هرچند این ها عدله لفظیست یوجد و فیها اموماتون و اطلاقاتون خب آقا امومات رو اخت کندی اصالت رو بگی آقا تو موارد سایر سیری ها شک داریم اون هم آمه اصالتال اموم میگه شامل اون هم بشه مطلق اصالتال اطلاق شامل این هم بکنه استفاده کنیم دیگه میگه نه با این که اوجد و ها اموماتون و اطلاقاتون انا انستکشافه امزا و اشتاقیم بخونم یا خود خودتو فکر کنید یه سی ثانیه روش بخونم حیفا اینجور بسا روم میده ولی تمرین که خودتون روش فکر کنید تا بیه نتیجه برسید حالا استکشاف امزا اشاره ببینید در واقع میگه دلیل شما یه بخشیش لفظی بود مجموعش لفظی نبود شما استدلالتون این شکلی بود من نگاه رو فقط نگاه کنید سمعی بسری بشه میگه شما ادله نهی از منچه رو داشت که این باشه با این سیده ثابت شد؟ نه یه زمینه همش داشتی اون زمینه چی بود؟ می گفتیم عدله نهی از منکر میگه اگر شعار سکوت کرد چیه؟ باید باید سکوت کنه باید نهی از منکر در حال که ما میبینیم سکوت کرد پس سکوت شاره نشون میده که این سیره رو امضا کرد منکر میسته امزاش کرد ببین پس در چنار لفظ یه سکوتی هم میاد بازمیمه اینها به امضا اشاره میرسید خب مجموع این لفظیه یا لوبیه؟ مجموعش لفظیه نیست که یه تیکش لفظی بود پس ما این رو لفظی باید فرض کنیم لفظیه چه شد که باید به قدر متعدد نفس بشه ببینید این که الا شاف و اشاره من سکوتهی به زم مل وجوب المستفاد منها وجوبی که از عدل نحی از منکر ما به دستو بردیم میگیم نحی از منکر واجب سکوت کرده یعنی نحی از منکر نکرده پس معلوم شده که اصلا منکری نبوده است این یعد دو دلیلا لبیه دقت کنید اینو براتون تون جا بیافته دیگه روش رو فکر کنید بعد انشالله هم نهوم با به حوصول علم اول خصووق به مووا فقط لجل زلت چ ما لجل زالج به موافقت علم پیدا کردیم یا اطمینان پیدا کردیم. ذاکنی؟ یعنی زنمه وجود به سکوت زنبه وجود به نریاز ماچ چ از دللی ظی بود به سکوت این دوتا. نه نمیگیم شارع چون سکوت کرده پس دلیل لُپیه نه میگیم دلیل ما بر اینکه این حکم سیره از سوی شارع امضا شده دلیل ما چیه میگه اون ادله لفظیه به اضافه سکوت شارع ادله لفظیه وجوب نهی از منکر رو میاره حالا این کافی نیست زمیمه سکوت به این وجوب نهی از منکر مجموعه اینا هم که لفظی نیست که رفتاد نه احناش. آره یه بار دیگه آیا سلامتی اینو توضیح بده الان استر... اه... یه نفر بپرسه آقا چرا اینجا قدر متعقن عقص میکنید بگید چون دلیل لوبیه. بعد طرف میگه کجاش لوبیه؟ دلیل مثلا نریض از چه لفظیه اطلاعش رو عقص کن. چرا میگی که لوبیه قدر متقن عقص کنید خیلی فهم میکنه آخه نتیجه حالا جواب بده استر... اصلا الفاظ داریم با اینکه الفاظ داریم چه اون واژه اثبات دارن خب یعنی صرفا هم الفاظ نیستش صرف الفاظ نیست تو امتحان عملی هم پرسیدن همین می... میگی درست لفظ داریم ولی دلیل نهایی ما که برای ما موافقت رو اثبات خواهد کرد صرفاً این لفظ نیست که اضافه یعنی ما فقط با دلیل لفظی نهی از مونچن ثابت کردیم این سیره رو نه اینو گردیم بعد کنالش سکوت شاره رام. هم اوگردیم مجموع این برای ما اثبات کرد که مجموع یه لوبیه یعد و دلیلن لبیه خیلی خب لنه و منباب حصول علم یا و سوخ برموافقه یعنی شارع موافقه لعجل این زمینه ای که سکوت رو زمیمه کردیم به وجوب حاصل از عدله لفظیه اصلا مطلب به نظرم یه از اینه که حتی اینقدر روش برس می ش ما در مورد وجوب امر به معروف و نهی ازمان منکر نمیخوایم بحث کنیم. اون محل بحث ما نیست که. ما در مورد اینکه این سیره حجت این سیره درسته، داریم صحبت می کنیم. اونم دلیل لفظیمون کجا بود؟ ول مت... حالا چه قرار شد متيقن جدی کنید اینم مقدمه بعدی. متعقن ما چیه؟ ول متعقن هو احراز الامزا به نسبت اله اهل الارف خاص پس آقا جنبندی این بحث از اولش تا اینجا مرحلی از اولش تا اینجا میگیم آقا اگر شاره عرف خاصی رو سیرش رو ثابت کرد امضا کرد برای خود همونها امضا میشه برای دیگران نه چرا؟ چون هر دلیل رو نگاه کنید که حجیت بخشیده به سیره همه اینها رو نگاه کنید طب اون ادله غیر از اون سیره خاصه برای دیگران اثبات نمیشه حالا یا ظهور حال نیست چه دیگه توضیح داد دیگه یا ظهور حال نیست یا با دلایل لازمارو ما دیدیم که اونم شامل دیگران نمیشه فقط خود همون اف رو میگه و یا با اون ادله نهی از اینها اومدید که اونم هم قدر متعیقن باید بشه لو پیانت ترجمه تاعتام میگیرید پس اون اشتراک و اون نوشتم اونجا عدم خصوصیت و اینا چی اونا رو اعلان میگه میگه که سم ان هاذ البحث من اول گفتم چون اگر اینا باشه همون اول کار تکیف روشن میشه کتاب آخر میگه ولی خودش حواسش هست میگه که سمه این نهاز البحثه فرعه احتمال دخل خصوصیت زالکال عرف خاصف الحکم شریعی مستکشفه به امزای سیرته میگه البته این بحث که داریم اول باید سراغ این دوتا بحث بدید خصوصیتی در اون عرف هست یا نه اشتراکی بین ما و اونها هست یعنی حکم بین ما اونها مشترک هست یا نه اگر اینها بودن دیگه اینا حل میکنن نیازی نیست به اون دل دبریم سمه این نهاز البحثت فر احتمال دخل خصوصیت زالکال ارفل خاص برای این من چی مثال زدم مدیر برای کلاس پایه می میبینه که اینا همشون جزوه توی مثلا کامپیوتر میبینن به صورت تایپی می نویسن و هیچی نمیگه میگیم که این سیره برای ما امضا شد دیگه حالا به هر دلیلی، زور یا هچ بعد میگیم آیا برای ما هم همینطوره یا نه اگر احساس کردید که اونها خصوصیتی دارن مثلا اونها چون پای هفتند گفتم تازه اومدن دو لازم یه مدار باشون کتاب بیان را بیان باشون به این جهت گفته خب اینجا دیگه نمیتونی برای خودمون کنم. پس اینو باید داشته باشیم اگر خصوصیت نباشد تازه بحث بحثمون بعدش هم اشتراکی که اون آخرش میگردم پس فرق احتمال دخل خصوصیت یه سوال بپرسم اینو کوتاه جواب بدید همه اتون هر اگر دخل خصوصیت داشته باشیم تعمیم میشه یا نه دخل خصوصیت داشته باشیم تأمیم میشه یا نه نمیشه دیگه خصوصیت دخیله یعنی اونا چون اینجوریان اثبات شده پس بالا دیگران تعمیم نمیشند پس جواب منفی. فر و احتمال دخل خصوصیت ذالک العرف الخاص فی الحضر الشاری به بامضاء السید. خب حالا اگر دخیل باشد خصوصیتون، اگر دخیل نباشه که خود به خود تعمیم میشه. دیگه اون موقع نمیایم رو ادله بحث کنیم چون خودش تعمیم شد دیگه. چرا رو ادله بحث کردیم؟ چون از خود سیره تعمیم ندادیم. آیا ازلهش یه جوری میشه برای ما ثابت بشه یا نه این بحث پیش اومد دیگه؟ و اما مع علم اول وسوق به عدم دخل ها فيه ببینید یعنی آیه خلج حق داشت که جواب بده اگر میدانیم یا اطمینان داریم که خصوصیت تخیل در اون عرف نیست خصوصیت تخیل در اون عرف نیست یعنی چون پای اولاً برای اون اجازه داد نه پای وای دیگه من اجازه میداد ولی خب چون پای اول رو دید به اونا اجازه داد علم یا بصوت به عدم دخل خصوصیت در اون عرف خاص داریم فلا اشکاله فلا که یعنی بحثی پیش نمیاد که آقا ظهور حال شاره روبیه نمیدونم چی چی نه دیگه بحث نمیاد خود به خود دیگه حکم اتوماتیک تعیین میشه فلا اشکالاتی تعیین به غیر اهله ذالک العرفه و جزا پس اینم یه فاکتور دیگه تو بحث شد، دخل خصوصیت. و جزاء، از استثناء اثبات تعمیم به قاعده اشتراج. ممکنه هم بس ما بیایم از قاعده اشتراج استفاده بکنیم. اشتراج حکم بین همه مکلفین. عالم مجاهل نه، دوباره تایید می‌کنم که اشتباهه. چون اینجا بس عالم مجاهل نداریم. اشتراج احکام بین همه مکلفین. بله شاید برای وجود مقدس پیغمبرمون چند تا حکم خاص داشتیم مثلا پیغمبر عزیز ما میتونست بیشتر از چهار تا ازدواج دائم داشته باشه اما دیگران ندارند خب ولی این چند تا مورد خاصه اونم برای پیغمبر بزرگوارم اما دیگر بقیه مردم تو احکام یکیه نمیشه گفت ایرانی‌ها این حکم رو دارن ولی لبنانی‌ها ندارن شامی‌ها ندارن آفشاریه نه نمیشه خب اگه اینه باشه پس برای اون عرف خاص برای ما هم جایز میشه دیگه و کزایز از تطعنه اثبات تعمیمه به قاعدت الاشتراک حسیرت البحث دیگه ببینیم نتیجهش چی شد این الوجوه المذکوره لی اثبات امزای سیرت این تممت اگر اون وجوه که گفتیم چه عبارت بودن نهی از منکر و عمر معروف ارشاد جاهل اجیال آینده نرز غرز لازرار، ظهور حال اگر اینها تمت این تمت یهرز و به ها هم امضای اون سیره و هم امزای اون ارتکازشون این مرحله اول داره یه و به ها امزای ارتکاز اقلائی ایزن پس ما که اول فصل سادس ورده کردیم مقدار و اون محدوده دلالت دلیل در مورد سیره به اون ورده وفا کردیم بهتون گفتیم چقدر اثبات میشه دیگه هم سیره ثابت شد الان هم ارتکاز مردونی که اون حدیرلا رو قبول نکنیم بگید نه مرده قرار است که باش استدالیم کنیم مناقشه هست روحور حال مناقشه هست اون یه چی مناقشه هست از یه مناغشه بس دیگه هست. بر فرض قبولش یه رزو به هایمزا اول ارتکاز یه ایزن چرا گفت ایزن؟ تو خود سیره هم ثابت شد علاوه بر سیره ارتکاز هم ثابت شده بله دیگون اینتمت هم چه سرجاش حتی ما هم یه تجسد خارجن فی زمن مستاقن فی اصل محسوم عليه السلام حتی اون ارتکازی که در خارج تجسد و تجسم نداره به مرحله عمل نرسیده در یک مستاقی تجسم پیدا نکرده است چه اینو میگفتیم ارتکاس اما اگر اون چیز ذهنی در خارج به عمل رسیده اونو چی گفتیم؟ سیره؟ نه سیرت چون عمله اون ذهنیات توست اینو جواب بده اون ذهنیتی که منشه این عمل بود اونو چی میگفتیم؟ چه در واقع اونو ارتکازه یه چیز دیگه گفتیم؟ نکته نجته. اون نکتهه برد کاش جایش داره به نکته هم میکن نعم لا یونجن و اثبات و امزا الارتکاز و ال قلائیه به دلیل وجوب الامن معروفه و نهیان منکر حتی ازا تجسده فی زمن مستاغن فی زالیکل اصره یادتون باشه این رو و یه ادونه رو اون موقع جدا کردیم گفتیم ادله اثبات حجیت سیره اگر امر به معروف و نهی از منکر باشه اون دیگه ارتکاز رو اثبات نمیکنه چرا چون خارجی چون گفتیم نهی از منکر و امر به معروف در مورد عمل خارجی به ذهن شما کار نداره که منم یه ملاحظه داشتم اون موقع یعنی بعضی وقتا شما لازم هست نهی از منکر کنید به خاطر اینکه یه ذهنیت تو ذهن طرف هست بله دوی خبر باید داشته باشیم دیگه مثلا من میدونم این آقا تو دلش نجات پرسته یعنی تو دلش خودشو از همه بالاتر بود به خاطر نجاتش میگه چون من یهودم من اسرائیلیم مثلا از دیگران برسرم این نهیت منکر نداره انصافه ومورب المعروف ون هنل منکر این شاملی نمیشه میشه بعضی وقتا اون کار ذهنیه خود کار ذهنی هست لذا میشه گفت الان همین خودش ارتکاز الان این ارتکازی که تو دل این آدمای های هست همین ارتکازه کار رو خراب کرده دیگه لذا اون ارتکازه رو باید نحل کنید الان شما اگر با سهی هونستا بخواید صحبت کنید بگیده ما با اون بوم بنداختن خیلی کار نداریم بنداز ولی اون ذهنیت چثیف تو عوضکن. ذهنیت باعث شده این کارا رو انجام میدی. دیگران حیوان میدونی خود رو انسان میدونی خب اونو رو درست کن این نهی از مج نداری؟ داره. لذا میشه روی فکر کرد. خب. حالذا به نسبت علل مرحلت اولا اما به نسبت عل مرحلت سانیت فقط زهره انل. برایث هم چ یاد خوندیم دیگه. عمل وجود مسکوولتا ان اثبتت امضا از سیارل خاصه فهیه اننمما توست به تول امضاعت به نسبت ال گران فقط برای همون خاست که داشتیم. ال اهل کرد اوفل خاصاصل نذیم و قطع سیلتتو بین ها لا غیرهم فر دیگران؟ نه فقط برای اونها ثابت میشه. این هم از بحث محدودی که سیره بر ما ثابت می کند اگر پس شما دیدید مثلا در بین خراسانی ها یک سیره ای هست مثلا این مدلی خرید و فروش می این مدلی معامله انجام می و شاره همونو تایید کرد اون دیگه برای اهل آزربایجان ثابت نیست مثلا آزربایجانی ها یک من رو پنج چیلو می دونن در حالت جای دیگه یک من رو سه چیلو می دونن. حالا اونجا یک من مثلا تو بحث معاملاتشون مورد یک موضوع یک می باشه حکمی شهر دیگه اونها اثبات میشه برای ما معلوم نیست قدر متقدر همون خود اونها هست خیلی خوب سلامت الله اللهم صلی اللهم بحث‌های بعدی بحث‌های مفید و کاربردی هست ان الله که تشریف داشته باشید این بحث‌ها رو با هم ادامه بدیم